من که از آتش دل چون خم می در جوشم مهر بر لب لبزت خون می خورم و خاموشم قصد جان است تمع در لب جانان کردن تو مرابین که در این کار به جان می کوشم من که آزاد شوم از غم دل چون هردم هندوی زلف بطی حلقه کند در گوشم خاشلله که نیم معتقد طاعت خیش اینقدر هست که گهگه گه قدهی مینوشم هست امیدم که علا رقم عدو روز جزا فیض افوش ننهد بار گناه بردوشم پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروغ من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم خرق پوشی من از قایت دینداری نیست پرده ای بر سر صد عیب نان میپوشم؟ من که خواهم که ننوشم به جز از راوق خم چکنم گر سخن پیر مغان ننیوشم من که خواهم که ننوشم به جز از راوت خم چه کنم گر سخن پیر و مغان ننیوشم گر از این دست زند مطرب مجلس رقع شعر حافظ ببرد وقت سما از حوشم